کتاب افسانه های اقوام ایران نویسنده عبدالسالح پاک ارائه از کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افثانی صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده ناهید الیاسی دو برادر این داستان را رسول قربانی مقدم از استان قزوین نقل کردند. روزی روزگاری پیرمردی دو پسر داشت. روزی پیر مرد به بستر مریضی افتاد و پسراش رو بالای سرش خواست تا وصیت کنه. ولی قبل از اینکه که بتونه حرفی بزنه دار دنیا رو ترک کرد. دو برادر بعد از مرگ پدرشون بر سر تقسیم ارث اختلاف پیدا کردند. برادر بزرگ بسیار تمکار و زیاد خواه بود و بیشتر ارث پدرش رو میخواست برای خودش برداره. اون هرچی از پدر یادگار مونده بود رو سه قسمت کرد و با دقلبازی قرآن انداخت و دو قسمت از عرص رو برای خودش برداشت. اما بازم راضی نشد چندان که داشت که حاکی از ابراز نارضایتیش از برادر کوچکتر بود تو همه جای آبادی پیچید تا اینکه ریش سفیدا تصمیم گرفتن که ارث رو تقسیم کنن برادر بزرگ این بارم به فکر حق بازی و کلک بود القصه برادر کوچیک برای رها شدن از این بیآبرویی بدون اینکه حتی پشیسی از ارث پدر رو برداره به مکان دور از آبادی کوچ کرد و کنار خانوادهاش به زراعت و باغداری مشغول شد وقتی مردم دقلبازی برادر بزرگ را دیدن اون از آبادی بیرون کردن. اونم به ویشهای پناه برد برای خودش خونه ساخت و هرچی از پدر مونده بود ریز و درشت و سبک و سنگین رو با خودش به اونجا برد و همسری اختیار کرد و صاحب یک پسر شد. از اون طرف برادر کچیکتر هم صاحب یه دختر شد. سالیان سال از این ماجرا گذشت. پسر برادر بزرگ آراز و دختر برادر کچیک سارا بزرگ شدند آراز سوارکار ماهری شد چنانکه در گله اسبای پدر مادیانها را میگرفت و در فراز و فرود سوار بر انها میتاخت وقتی مادیانها بر روی ها میتاختند از زیر شکمشون رد میشد و دوباره پشتشون سوار میشد یا گاهی که اصفا مثل باد میتاختند چنان از پشت اونا خم می که مشت مشت خاک از زمین بر داشت سارا هم تو زیبارویی شهره ها شد اونطوری که خبر زیبارویش توی آبادیهای مختلف پیچید روزی در آبادی جشن عروسی برپا شد آواز سرنا از کوها می گذشت و به دیار برادر بزرگ می رسید. آراز از چشم پدر لباسی نو برتن کرد و خودش را آراست و آماده رفتن شد. اسب به هر رو که حتی پرنده ها هم به گردش نمی رسیدن زین کرد و سوار بر اون رد آواز سرنا رو گرفت و سمت اون آبادی تاخت. آراز موقعی رسید که جوانان آبادی سوار بر اسباشون اونا رو به هوای سرنا میرخ و دخترای زیبا روی آبادی شونه, شونه هم و بودن و اونا رو نگاه میکردن تو یه لحظه پیر آبادی دستش رو بالا برد و پایین آورد یکی از سوارا که شال سرخی تو دستش بود اونو تو هوا تکون داد و با اسبش به پیش تاخت سوارای دیگم اسباشون رو مهمیز زدن و اسب دوانی شروع شد. آراز که اسبش عقبتر از همه در حرکت بود، از اونا جلو زد. شال را از دست سوار رو بود و سر اسبش را سمت دیگر چرخوند و اون رو مثل پرندی توی کوه ها و صخره ها به پرواز در آورد. اسبای تمام جوونا خسته تو دره رها شده بودن آراز راه اومده را برگشت و روبروی نوازنده ها ایستاد. اسب آروم آروم به هوای سرنا میرخصید پیر آبادی جلو اومد و خلعتی به آراز داد شال سرخ را از اون گرفت و گفت رسم ما اینه که پسری که تونسته از کوره راههای سخت کوهستان برگرده با زیباترین دختر آبادی ازدواج کنه حالا تو کدوم یکی از این دخترا رو انتخاب میکنی آراز دختر رو تا آن روز ندیده بود. اون رو نشون کرد. اونا قرار گذاشتن تو یه روز معین کنار چشمه انتظار همدیگر رو ملاقات کنن. آراز به خونه برگشت و ماجرار رو برای مادرش تعریف کرد. مادر قافل از همه جا تموم ماجرار رو به گوش پدر رسوند. پدر که آوازه زیبایی دختر برادرش را شنیده بود، آراز را از دیدار با سارا من کرد. اما آراز دور از چشم پدر سوار اسبش راهی چشمه شد. تا خبر به پدر رسید، اسبش را زین کرد و از راه های میان برتاخت و توی نیمه راه به آراز رسید. سرش رو گرفت و از اسب پایین انداخت و کشت. سارا سر چشمه به انتظار موند. شب از نیمه گذشت اما خبری نشد. صبح شد. حتی سیاهی از خواستگارش به چشمش نمیخورد. غروب شد. فکر کرد شاید نامزدش سر یه چشمه دیگه به انتظارش ایستاده. خواست سر یه چشمه دیگه بره اما دلش رضا نداد فکر کرد لحظه ای که اون بره آراز میاد اینجا و دنبالش میگرده و اونو پیدا نمیکنه نسیمی وزید و انبوه موهای دختر رو با خودش برد و هر تاری از اون رو بر سر چشمه انداخت اکنون در کنار هر چشمه ای از تار زلف سارا درخت بیدی سر برآورده که هنوز در انتظار آراز هستند.